اینک منم و این تبعیدگاه دور تنهایی سرد و در سرزمین سکاها بسته زنجیر زئوس همدم کرکس جگر خاره و گناهم آتش و تسلیتم دختران دریا و مهراوه ایو مقذوب زئوس آواره زمین دور از من و من زندانی این هیچستان تلخ تنها چشم به آن که باید باشد و نیست قریب آنجا که نباید باشد و هست و من دانهی در دلش خاطره باغ و بهار گذشتهی مچول در جانش آرزوی سبز آیندهی ای ناشناس به حال هیچ تنها یک تصویر تصویری که در آن خاطره و آرزو به هم درامیختند این تصویر کیست دلم از حشمت یاد تو سلیمانی شد اکنون دیگر به اقلیم دیگری رسیدم که هوایش آتشگون و زمینش کین خیز و آسمانش دردبار است خلوت و انزوا و تنهایی حیرت و رهایی و گمراهی، پوچی و عبس و بیهودگی، بلاحت جهان و بیدلی طبیعت و تکرارهای بیحاصل زندگی، همه و همه را پشت سر نهادم و رسیدم به انتظار. رنجم ندیگر تنهایی که است و استرابم نه بی کسی که بی است و کسی چه میداند غریبی که خاطره وطنش شهر و خانه و خانمانش به حادثهای در او بیدار میشود قربت برایش طاقت فرساست هر گلی در این سرزمین گلوله آتشی است در هر نوازشی، احساس سرزنشی و در هر دعوت مهربان ماندنی وحشت دلی که از بی کسی غمگین است هر کسی را میتواند تحمل کند هیچ کس بد نیست، دلی که در بی مانده منده است، برق هر نگاهی جانش را می خراشد. لبخندها زهراگین دهانها های وقیه آزاردهنده، تسلیتها خفقاناور، لذتها دروغهای فریبنده، زیباییها حیله های اقفال، افقها حسارهای عبوس زندان، درختان هر یک قامت دشنامی، ابرها هر پاره سایه نفرینی، مهتاب سرد و آفتاب رسبایی و روز برس گرفته وقیحی که او را بر سر کوچه و با بازار بیگانگان میگرداند و شب گرگ آدم خاری که در پناهگاه دردمندش او را می جوید تا فرو بلعد و طبیعت ندیگر هیچستانی سرد و گنگ که دوزخی در گرفته از حریق و دریایی مواج از آتش‌های عذاب که هر چهره‌ای نگاهی طرح اندامی تنینی، رنگی در نگاه‌های او فریاد می‌کشد که او نیست بی پیوند بودن جز پیوند گسسته است نداشتن جز گرفتن است مرغی که در قفسی تنها زاده است آب و دانه آرامش میکند و برگ سبزی چراغ رنگینی زنگوله قشنگی غم از دلش میبرد اگر رهایش هم کنند به قفس باز میگردد اما پرنده وحشی پرنده‌ای که آوای جفتش را از قلب باغهای ناشناس دور میشنود سراسیمه و دیوانه بار، هرچند بی امید چندان خود را به میله های آهنین و در بسته قفس میزند و بیتابی میکند تا پر شکسته و خونین کنجی میافتد و سر در شانههایش فرو میبرد و چندان خاموش و آرام میماند تا بمیرد. و چه زشته است و نفرت و ابلهانه استدلال های و دلسوزی های مهربانانه و پند و اندرزهای مشفقانه که پرنده زندگی را برخود سیاه کرده است راحت و امنیت و نعمت آزارش می کند. دل به خیال و خرافه بسته است پروانه خیال پرداز دیوانه چقدر بر سرنوشت رقتبارت دلم می سوزد. ای پرنده شاعر چرا از این مرقان عاقل خانگی درس خوشبختی نمی آموزی من مرغ خانگی نیستم هر دلی عقل خیش را دارد برشور شوربختی گرگ تنهایی که در شب و صحرا و زمستان آواره مانده است و جز تند بادهای برفامیز کسی سراغش را نمیگیرد و جز گلوله سیاد در انتظار هیچ نیست، سگان پرشور و شعفی که بر آن خاکسترهای نرم، در مطبخ ارباب گرم و امن خفتند و از آن تهمانده های صفر مست شدند و مزبله های شهر رویایشان را شیرین و آرام بخش کرده است. دل می سوزند اگر دوست او باشند و یا شاد میشوند اگر دشمن او. اما نه گرگ باید سگ را به سفلگی محکوم کند و نه سگ گرگ را به جنون. هر دو بر فطرت خیش زندگی می کنند. با فهم خیش جهان را می‌فهمند. هر یک عقل خیش را دارد. مرغ باید بپرورد و پی ببندد و پروانه بسوزد و خاکستر شود. او تعمه هضم است و این تعمه آتش. آن را در جواب جو شکم ساختند و این را در پاسخ نیاز شم شبنم که تمام شب را در انتظار خاموش مانده است با نخستین بوسه آفتاب بودن خیش را رها می کند و این عشقبازی اوست و چقندر در حرارت خورشید ریشه میبندد و درشت می شود و این اقتضای فطرت اوست کدامین آقلانه تر است پرسشی ابلهانه است ما عادت کرده ایم که همه چیز را در عالم با فهم خیش بسنجیم حتی خدا را در قالب عقل خیش میریزیم او ناچار است آنچنان کند که ما می‌فهمیم. آنچنان باشد که ما می‌پسندیم. عاقلانه چیست؟ عاقلانه چیزی است که هر کسی به اقتضای سرشت خیش انتخاب می‌کند. و چه بیعقلی فاحشی است که همه ها را همانند پنداریم. در رستوران دانشجویی ها روزی بر سر میز ناهار روزنامه لوموند را می‌خواندم. سر مقالش تحلیلی بود از کودتایی که در بولیوی پرداخته بودند. کنار دست من یک دانشجوی اسرائیلی نشسته بود. سرش را به زحمت خم کرده بود و با کنجکاوی میکوشید تا صفحه‌ای را که از لای صفحات روزنامه بیرون آمده بود بخواند. گفتم کدام صفحه را می گفت: صفحه بورس ها را؟ آن را گرفت و ملتهبانه و دقیق نوسان قیمت کالاها و ارزها را بررسی می کرد. فکر کردم شاید تاجر است. هیچ نگفتم؟ اما او اعجابش را نتوانست پنهان کند و پرسید که سرمقاله سیاسی به کار شما چه میآید؟ مگر سیاست مداری از بولیوی هستید گفتم نه دانشجوی ایرانیم. گفتم شما مگر تاجری فرانسوید گفت نه دانشجوی اسرائیلی‌ام اما به هر حال در پاریس زندگی می کنم و لاجرم تحول بورس و تغییر ارز در زندگی ساده دانشجویی هم بی اثر نیست مطالعه صفحه سوم لوماند که صفحه اقتصادی است به من این آگاهی را میدهد که مثلا بدانم سال دیگر هم به لیت غذا همین هفته ریال خواهد ماند یا نه زیرا اگر وضع فرانک در میان پولهای دیگر دنیای سرمایهداری با همین منحنی رو به تزلزل رود احتمالاً به لیت غذای رستورانهای دانشجویی از سال دیگر هفده تا هجده ریال خواهد شد و همینطور چیزهای دیگری که به یک زندگی دانشجویی بسته است از قبیل کفش و لباس و اتوبوس و کرایه خانه و قیمت کاغذ و مداد و میوه و قهوه اما سر مقاله یا تفسیر سیاسی یا اخبار خارجی لوموند که برای شما روشن میکند که مثلا کودتای نظامی بولیوی راست است یا چپ، ساخت سیاه بوده است یا سفید یا سرخ یا عوامل داخلی برای زندگی واقعی شما و مسائلی که اکنون شما با آن در تماسید چه نتیجه دارد. لحظه‌ای در هم نگریستیم. و دیدیم که ما دو دانشجوی همسن و همعصر و هم رشته تا کجا در چشم یکدیگر دیگر احمقیم به یاد آن زن روستایی افتادم که عمر را در کار صحرا و فقر خانه به سر برده بود و به دو تن از خیشان من که یکی نازک و بلند بود و دیگری کلفت و کوتاه با لحجه محلیش می گفت قد بلند گل تو گلستان می چیند، قد کوتاه تا پاله گاف تو دیگدان می چیند. و ما به آن قد کوتاه خندیدیم و دیدیم او از آن قد بلند عضو خواهی می کند و دانستیم مقصودش این است که آدم کوتاه انصر مفید و به درد خوری است اما بلند قد آدم بیکاره و بی سمری. همیشه مسئله اختلاف درجه در عقل نیست بلکه اختلاف نوع و جنس هم هست که از آن غالبا بیخبرند. این است که فیلسوفان و عالمان عقل قرنهاست در شگفتند که شیخ اشراق چه نامی است که برای کتابش برگزیده است عقل سرخ عقل های دیگر عقل موش کور است که خانه های پیچ در پیچ و دقیق بنا می همه در زیر خاک در زیر آفتاب این عقل کور می شود. عقل روباه که هدف برایش هر وسیله ای را توجیه می کند و عقل سگ که گاه با سگدوی های شب و روز گاه با کند و گاو در مزبله های خلایق گاه با نیش و گاز و او او پارس و قصاوت گاه با دمجنباندن و موسموس و چابلوسی و استرهام، گاه پیشتازی از سیاد در سید شکاری که دیگری مجروحش کرده است، گاه با او او از کینه محتابی که در بلندی استقنا و تنهایی زیبا و پرشکوهش نور میافشاند و پستی و زشتی و پلیدی او را که در شب پنهان بود بیان آنکه بخواهد و حتی آگاه باشد روشن میکند. و گاه با وفاداری به ارباب و پاسداری قصر نان خودش را در این روزگار قحطی و خشکسالی در میآورد و عقل کاسب که آسمان سقف تجارتخانه اوست و جهان بازار بزرگ و مذهب دخل و زمان تقسیم شده نه به قرن و سال و ماه و روز و ساعت که به سررسید نزول و سفته و چک و معامله و بالاخره وجودش همان موجودیش و انسانیت و کمال و خوشنودی خدا و بهشت همه کالایی که با پول میتوان خرید برای خدا خانهای در سر محل ساختن و برای امام زریحی گران قیمت سفارش دادن و به سید و ملا که اهل و عیال اویند و به هر حال به ابوالفضل آش و به حسین شله و به حسن شله زرد و شربتی شیرینی چراغانی درست می شود کلکش کنده است. انسان است که یا میفروشد یا میخرد. و بقیه ی حرف ها همش حرف است و عقل روشن فکر موریس دوباره گفته است کسی که وجدان را از دست داده است بیان که شعور را جانشین آن کرده باشد. عقلی که آن همه اشپنگلر را عصبانی کرده است. آنها که در کافه‌ها و جلسه‌ها و کلاس‌ها و کنفرانس‌ها می‌نشینند و می‌بافند و تحلیل می‌کنند و نتیجه می‌گیرند و بر اساس آن نقشه می‌کشند و برنامه طرح می‌کنند و وقتی وارد میدان عمل می‌شوند و در برابر واقعیت زنده موجود که آنها ندیده و حس نکرده آن همه قائبانه درباره آن اندیشیده بودند و استدلال کرده بودند و به نتایج دقیقی هم رسیده بودند قرار میگیرند گیرند می بینی که خر پیششان ابو علی سیناست. و عقل زارع که یک دهم کار را خودش می و نه دهم بقیه را به دست توکل می و آه و نالب و دعا و حسرت و انتظار و عقل صنعتگر که ده دهم همه کار را خودش می کند و می پندارد که جهان و انسان جامعه و تاریخ هم ماشین است که فقط بنزین میخواهد و روغن که بریزی و با چند فرمول جامد و مسلم و مکرر آن را به کار اندازی برانی و از او کار بکشی و بقیه حرفها فلسفه است و شعر و خرافه و احساسات بازی های رومانتیک و مهم و عقل سیاسی کسی که در هیچ امری تردید ندارد و قاطع و تند و آتشین سخن میگوید و حرفهای ساده پیش پا افتاده را با آب و تاب و حرارت واگو میکند آنچنان که گویی کشفی است یا ناموس خلقت است حقیقت برایش تنها مصلحت است و هستی صحنه مبارزه سیاسی او و حریف اوست و غیر ممکن برایش غیر ممکن است و راه حل هر مشکلی را او به سادگی میداند و پاسخ هر معزلی را در یک جمله روشن و مقطع صادر میکند و باطل آن است که با او نیست و حق آن است که با اوست و هدف او قایت خلقت است و نهایت حیات و سرمنزل تاریخ و در چشمش همه چیز مطلق است یا همه است یا هیچ او مرد زمان است یک موجود موقتی ماهیت او را شرایط می‌سازند برایند نیروهایی که از همه سو در او سر به هم دادند این است که وقتی از جایگاهش کنار می‌رود پایان می‌یابد تنها یک خاطره می‌شود و از این روست که تنها می‌تواند خاطرات بنویسد خاطرات ایامی را که وی وجود داشته است درست در همان هنگام پایان میابد که مرد حقیقت آغاز می شود را در سنت هلن قیاس کنید با ناصر خسرو در یمگاندره چه می‌گویم؟ با علی در بیست سال سکوت و شکست و تنهاییش با بودا در گم شدنش با سنایی و قزالی و مولوی در گریز از دربار و دستگاه و با ملاصدرا را در کوهستان بیکس قم، با و با همه آنها که در از دست دادن همه چیز همه چیز شدند و عقل عالم که همه اسرار آفرینش همه ابعاد وجود و همه نیازها و دردهای روح و همه جلبه های انسان و همه چیز و همه چیز عبارت است از آنچه او میداند و چون خدا را در زیر چاغوی جراهیش لمس نکرده است منکر است و چون عشقی اینچنین نیرومند و آتشناک با مقداری کالوریی که از سوخت مقدار محدود و حساب شده قند و نشاسته و چربی در این اندام نمی خاند بنابراین وجود ندارد. و عقل فیلسوف کسی که از خدا و خلقت و عالم و روح و انسان و تاریخ و آینده و قایت و رمز حیات و حکمت آفرینش سخن می و نظر میدهد. و به هیچ قرینه‌ای نشانه دلیلی تجربه‌ای اطلاع و خبری بیشتر از دیگران احتیاج ندارد عقل ادبی کسی که تا در سخن گفتن چنین را چنین تلفظ کردی یا فعنظر را همزه وصل قرائت کردی بعد از آن اگر شق القمر هم کردی فایده ای ندارد چون قطع کرده است که در هر زمینهای کاملا پیاده ای. و آدمی که مقاله چهارم در شعر و شاعری از چهار مقاله نظامی عروزی تصحیح مرحوم ادوارد براون و مرحوم علامه غزبینی و استاد معین و غیره و غیره را نخوانده است چه حقی دارد که درباره نسبیت آینشتین با طبقات اجتماعی حرف بزند؟ و کسی که آن را نخوانده است چه نیازی دارد که به هیچ حرف دیگری در دنیا گوش بدهد؟ مگر نه این است که هر که خاند صرف میر میر را بشکند صد قفل و صد زنجیر را نزد مرحوم سعید نفیسی بودیم در فرانسه دانشجویان از سیاستمدار معروفی به تجلیل سخن میگفتند گفتند که ملیست و آزادی خواه و شجاع و هوشیار و دیدم که لبخندی تحقیرآمیز ارزانی فرمود حاکی از این که شما کجایید؟ چه خبر دارید؟ من او را از نزدیک می شناسم. با او حرف زدم او نه یک کلمه تاریخ بلده است و نه یک کلمه جغرافی و عقل روحانی بهار آن را به نزم آورده است که دو تن از این گونه اغلا با هم سخن می‌گفتند در باب انسانها و عقل عارف و عقل سرخ، عقل شهوب الدین صحره شیخ اشراق و عقل آبی، عقل بودا، عقل نیروانایی فضای آرام و بیوزش، زلال، سرد شده، خاموش، عقل بیان و عقل سبز، عقلی که از یک سو امیخترین مایه هایی را که در پنهانی ترین و دورترین زوایای روح انسانی جا دارد میبیند آنچنان که وانگوگ میدید و در تابلوهای شگفتش به خصوص در تابلو یک کافهش آورده است و از سوی دیگر عقل رویش و خرمی و بهار است عقل جوان زدن و سر زدن و شکفتن عقل احیا رنگ و اردیبهشتی بهشتی طبیعت جوان رویش و تراوت و شادی و نشاط این جهانی محسوس عقل مائده های خوب و زیبا و پاک بهشتی در زمین و برای ما عقل حکومت و چیرگی و حجوم و عقل جباریت و استبدادی که منطق آزادی و صلاح و پسند زمانه از آن میهراسد میگریزد و روح دزدانه و پنهانی خود را بیخبر به زیر دستهای تملک او سایه تسلط او میکشد، عقل جبر دلخواه عقل پاسکال و عقل کبود عقل راز و درد و عقل سپید ارادت و تقدس و ایمان و تقبا و عقل سرخ عشق و عقل آفتابی نه عشقی که صورتی رنگ است نه عشقی که سرخ است نه عشقی که ارغوانی است اشقی که به رنگ سو سوزندگی و درخشش و موجهای جادویی و غیر مادی طلا را دارد آفتابی همسپید و هم سرخ. و من اکنون چشم در آفتاب گشودم، تاریخ را پشت سر نهادم، تاریخ را اگر بکشیم به مطلق میرسیم، و من او را کشدم، شرق و غرب را گشدم و هر دو سفر را به پایان بردم، جهان نمایشگاه عظیمی بود که من همه قرفه هایش را یکا یک رفتم و دیدم، و دیگر بازگشتن و بازدیدن آنچه گشتهام و دیدم برایم نه تنها بیهوده است که محال است. است که از زندانهای طبیعت، تاریخ، ما و من رها شدم و رسیدم به دست هموار و بیکرانه رهایی، مطلق، بیرنگی و بیسویی، حیرت، آتش، عبس، پوچی، و اکنون از آن وادی نیز گذشتم و رسیدم به کشوری که بر آن گام هیچ کلمهی نرفته است و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم و که میداند چه میگویم چه احساس می کنم کجایم بودن حسار تنگ و تاریکی است که در آن دیگران همه به تاریکی و تنگ ناخو کردند چه میگویم؟ آن را احساس نکردند هنگامی که روزنه به بیرون باز میشود، تنگنا و ظلمت و خفقان را به اتاق میآورد. دیگران همه با هم یا با اساسه اتاق به کار و بازی و کشمکش و جدال و غم و شادی مشغولند و من تنها در کنار پنجرهی که در برابرم گشوده است به تماشا ایستادم و جز اشباه اندامهایشان را نمی بینم. جز زمزمه درهم و نامفهوم آواهایشان را نمی شنبم. حتی تشخیص نمیدهم که می خندند یا می گریند. صدای جنگ و جدالشان است یا پای و نشاتشان در کنار این پنجره ایستاده و چشمهای اشکالود و مشتاغم را به لبهای کبود مشرق دوخدم و ساقه نازو که صبح را مینگرم نگرم که دم در برابر چشمان آرزومند و بیتابم میروید و دلم همچون پرنده‌ای که آوای آشنایش را میشنود. بیقرار خود را به قفس می زند و من به دو دست قفسش را می تا نگهش دارم درخت زرین آفتاب در برابرم می و من در پرتوب سربی سحر سواد آبادی را می که بر کرانه هستی رنگ می گیرد و هردم به چشمم آشناتر می آید و اکنون کوه‌ها ها و رود ها و باق و برج و بارو و خانه ها و جاده ها و کوچه ها همه را و آن کوچه که با هم همیشه از آن گذر داشتیم و آن خانه همان کوه و همان رود و آنک دهانه آشنا و خاطر همان قار آفتاب تا بلندی چاشتگاه بالا آمد است و صبح همه را روشن کرده است و هستی به لبخندی به رنگ دوست داشتن میخندد آه چه میبینم چها میابم احساس کسی را دارم که ناگهان در برابر آینهای بیستد و تصویری را که بر آن میبیند هیچ نشناسد میگویند تن که میمیرد روح این جهان و همه پیوندهای این جهانی را میگسلد و به سوی عالم غیب پرواز میکند نشأت دیگری عالم دیگری حیات دیگری ما بعد طبیعه عالم الوی نُسحتگاه اربا لاهوت ملکوت آخرت و میگویند میان دوزخ و بهشت هیچستانی است به نام برزخ میگویند دنیای برین عالم اربا حیات پس از مرگ در وهم این جهانی ما در قالب عقلی ما نمی گنجد کلمات نیز به آنجا راهی ندارند میگویند اما من می بینم.